بله همانطور که میدانید حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پاریس قرارداد خلید 118 فروند هواپیمای مسافروری را با شرکت فرانسوی ایواس امضا کرد به همین مناسبت و به منظور تایید گزارش از سنعت هوایی ایران با کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جامسرهنگ به یک سفر هواپیمایی آمده تا برای شما عزیزان یک گزارش بله. هوایی تقیی سرنگ جان سلام علیکم بفرد بله هم از فرازی آسمون در خدمتی شنوندگانی عزیز هستم سرنگ الان شما من... میشه توضیح بدین که چرا اینقدر تیری کلبانی گرفتی به خود دل... تلبان <تصفح> که یکی دیگه است و. من عرض کنم که خب بنده با توجه به دوره های متعددی که گذروندم برای سرهنگ شدن خلبانی هم یکی از کارهای دیگه است که بلد هستیم دیگه بی خیال دیگه سرنگ. عللیه لباس خلبانی پوشیدی نه گفتمیم زدی ما چی نگفتیم دیگه دور بعد ندادی فکر کردم خلبانی شما مش خلبانی سردار قالیباف آقا این عزیز این چه جور حرف زدنه این حرف چی چیه هم بنده هم سردار قالیباف خلبان های قابلی هستیم آقا گفتم جون خودم در خطر وگردم گفتم این خلبانی دیگه فرمونی بده دست ببینیم چیکار میکنین عزیز ولی ولش کن شما میگی خلوانی ما میگیم خلوانی شما اومدی تو ارتفاع حالت دگرگون شدست ما بازه بیارف زدن باش عزیزی من باشه با باشه باشه سرنگی این هوا چی بله هوا رو جای فرو میکنه یعنی هوا جا. هوا, جا. هوا جا چی چیه سامقا جو هوا نا جا شما همون بابا هوا چی هوا نا جا هوا, هوا نا جا باهدی هوا جا یا همون نیروی انتظامیه این آدم بگن هواپیمایی نیروی انتظامی دیگه هواجا دیگه چی؟ میگم هوا جا عزیزی من نمیشنفی شما مسکر باشه و همون که تو میگیری حالا سرنگ تو ادعای خلبانید میشه برای ما بگو اوزای هواپیماهای ایران چجوری بود تا قبل از این تحریف بله ارز کنم که خیلی اوزای بدی داشته شما کلن تو کشورمون ده بیست و پنجا تا هواپیما داری از این تعداد پرواز صد و پ خب ب... اونا که نمیتونن پرواز کنن چی اونا هیچی دیگه اونا پارک شدم تو فروتگاه ها خب خداره شد که دیگه تموم شد دوره اونا ما الان توی هواپیمایی نو نشست بله چی چی میگوییم شما هواپیمای نو کجا بود آقا همین دیگه همین هواپیمایی که ایران الان خریده نوان همه دیگه سرهنگینا بله اونا چه نوان ولی حالا کهوت ها اونا برسن به دستمون عزیزم. من شوخی نکن دیگه ما یعنی این هواپیما که توش نشستی؟ حالی دیگه نه آقا این که مال اجازه بدی من نگاه کنم بل این هواپیما مال سال هزار تا نوصد و, و اذیت بله. نکن ببین من جنبه این شوخیال رو ندارم ما سرحیم ببین نه ازید چیست هست با شما شوخی دارم این هواپیما همون هوا است که اش پرنبی باشی بیرفتی ازیره کیش ها میومن ج یعنی مال 40 بله سال پیش این؟ بله دیگه. حالا تو به من گفتی بیا بریم هواپیما تست کنیم. من فکر کردم مجذوری. بیا بریم این هواپیما جدیده بله. رو تست کنیم. این آخه شما خیلی خوشخیه. علی مس که بله هن... اون هواپیما تازه قرار است سال 2009 ده شروع بشه تحویل دادنش. سال 2019؟ بله بله. علی مس. چه سال دیگه یعنی؟ بله بله. یا خدا، یا خدا. نه حالا شما آقا سن نخوای هواپیما موتورج تازه تعمیر تا است. کپتانش الان به من گفت فقط یکم روغن سوزی داره که اونم این مشکلی نداره روغن سوزی؟ بله بله متاسفان میگم حال حالا که اگه این هواپیما های به مشکل بر بخوری تو بلدی بری کمک این کاپیتان دیگه والا ما تو داری تا سر این هواپیما خوندی خوندیم متاسفانه بنده با... با... به این سیستم وارد نیستم بمیری اینج... سرهنگ بله. خلبانیتن مثل سرهنگی تبا دیگه بله از این هواپیما پایینتر که میشه کایت dabei... دیگه آقای یا خدا سرهنگ چیزی ن با گشت اون بر این وسیله دور 22 های موتوری ثبت را اصقاتی من کاملا علام توجه شدم پای تو زیاد اجازه رنگ پوش بد می دوه بچه‌ها اینم کاپیتان دلیش ناز میز محام چون بر فراز آسمان چچاله هوایی بدی رو چاینش می ریخ خیلی مراقبه داشته باشید همه چیز تحت کنترله من دنبال بچه ای یه خواهم چه نه فرمونه بگی معنای سر کاپتانه کاپیتان دوم بالا قند داشی با چایش میخواد بخوره دیگه آقا چیزی نیست که غند چی میگی آقا قند چی هواپیما داره شقوق میکنه سرنگ چی چی میگی شما کاپیتان ایرانی می بعضی از عزیز من عادت دارم من برمش کاپیتان الهلاسلامو میگم آه ای چای چی غند چی سرنگ فایستر یعنی هواپیما داریم شقوق میکنه کاپیتان الان بنده گازی فردی اعلام میارم برای دو دقیقه بزنی چیه اینا چه اینجوری میکنه من جبونم های های من نجات بکنم های های کمک کمک کن این وسط آسفون چی بخواد کمک کنم من نباسم برای مردن اصلا مناسب نیست آخونه این فرصت دواره نبی پام برسه به زمین این های مولول همه رو بهش میدم دیگه نبی کنم قرد کردم خدا قرد ماجرای این دختره واقعا کار بندی می قبول <سؤال> نفس بر من مستولی شد یه فرصت دومانه بده خدای کاپیتان جون مادر استکان رو بلکو برمونه بده جزه هر دیدن رو میبونه واسه برد ما بره